منو چه تغییر می کنم؟ اینم صورتیه که تکلیف اینه. گویا سمتش متن و یه مشکلیه مشکل چه که تغییر می کنم. نه اون چه اش که رو نسخه اش تا می‌برن من چه جواب رو فرزنش پی می ما از بروم تاخدی مقبول ما از بروم در ما از جنون در قدم ما غرور خود تنفرد که طبیعی می فرند و ستتی می میدهند نکن این تاولیکا نگار چه چه با پیر و باب اول به نیم نظر ببین نیم نظر نیم نظر می بنابراین هوام در این معامله تقصیر اون می و جردجه نهادن بستیزموز قوبی دگر حوالو تقلیل میکنن کل جنب اعتماد مکن بر ثبات در سن خواه خانه شیخ و حافظ ميد و مستید و چون نیچ برگری همه از من که این قضل چون مطلوب خیلی مهم میداره که من ازش هر که زد یه دور دیگه خودم میخونم در ذهنم باید بگم که دو، چهار و شیش و نه تا نسخه اصله اینه در چاپ مرحوم خانلوی که از جمعه نسخه است که به اصطلاح احساس چاپ مرحوم غزینی بوده نسخه متعلقه به مرحوم خلقهالی نصره خیلی معتبریست نصره هشت حالا سا من میخونم بعد سر جاش که میگم دانی که چنگ و چه تغریر میکنن پنهان خورید باده که تکفیر میکنن گویند رمز عشق مگوید و مشنوید مشکل حکایتیست که تغریر میکنن ناموس عشق و رونق و شاق میبرن. من اجوان سرزنش پیج میکنم ما از برون در شده مغروب صدفری تا خود درون پرده چه تدبیر میکنم تشویش وقت پیج مغان میدهند باز این سالکان نگر که چه با پیج میکنم شد آب رو به نیم نظر می توان خرید خوبان در این معامله تقصیر می کنند قومی به جد و جهد نهادن وصف دوست قومی دیگر حواله تقدیر می کنند کل جمعه اعتماد مکن بر ثبات در که این کار کامه که تغییر می کنند میده به شف حافظ می یا محصب چون نیک بنگری همه تذیر یکی اون به اول که در نسخه م قبینی آمده از نسخه خلفاالی آمده است و یه نسه دیگه آمده است دانی که چنگ و چه تغییر میکن تنهان خورید باده که تعذیر میکنن در با این و زیر. مجازات شرعی سه جیره. یکی مجازات بدنی که اونو بهش میگن حد شواب بردم هشتاد تازیانه مجازات شد. این حد یکی مجازات نقدیه نقرداخ که بهش میگن دیه و البته هر کنون شرایطی داره مثلا فرشون کسی آدم بکشه اگر صاحبان خون راضی بشن میتونه دیه بده, بده. اگر راضی نشن نه یکی هم قصاصه قصاص یعنی عین اون عملی که کرده با خودش بکنه دندون کسی روش است دندونش روشکنن، چشم کسی رو کور کرده، چشم رو کور کنن بله آخر الانف و بالانف، والعین و بالعین، والعوزن و بستن، والجروه و قصاص دندون به دندون، بینی به بینی، چشم به چشم و جراحت ها قصاص کنه، این چه این سه ولی تعذیر مجازات کردن پایین حد شرقی یعنی اگر کسی رو مثلا بیارن شراب خود ولی احساس پشیمونی میکنه جوون ناراحت خیلی چیز میکنه قاضی حق داره که پایین مجازات شرقی مثلا بگه ده تا شلارش میکنه. یا حتی قول ازش می که دیگه چیز نکن یا پده به ترسوننش تذیررس این ترسون و مجازات مربوط به حد مربوط به دیه و خصاس نیست که اون تذیر نداشه فقط مربوط حد که حد دو تخفیف میدن اگر اگر کسی مستحق به این باشه که در حد، حد، در حدش تخفیف بدن حد و تخفیف این میشه تذیرش در نسخه خلفالی تعذیر آمده حالا شعره بگم دانی که چنگ و اود چه تغریر می کنن؟ تقریر کردن یعنی بیان کردن همین کاری که بنده میکنم اینجا اگر کسی بنویسه اینجا تغریرات بلانک هست یعنی تفنانی که می گه می چنگ و اود اود اینجا اون ساز آلت موسیقی میدونی که چنگ و اود چی میگن؟ میگن پنهان خورید باعته خب حالا که تکفیر میکنن یا که تأذیر میکنند جواب این است که اگر تأذیر بکنن که خیلی باید دستشونم ماش کرد که شراب بخواه بابا با وقتی دوره کاملا حدا نزنم نه اسفشو بزنم خب محبتی کردم، مهمتی کردم قزل نشون میده که مقصود این میده دنبالش که میبینیم میگویند که بحثت می می اون اونور فقط این میمونه که آیا در مورد شراب خوردن میشه تکفیر کرد یا نه و اگه تهکفیر کردن نتیجهش چیه جواب این است که بل اگر کسی رو یک بار شراب خورد بیگیرن حدش بزنن بار دفعه هم باز بگیرن، باز تو تله یخته بر سه بان اگر ادامه بده یا جرامی دیگه حالا فقط این یکی نیست چرای دیگه غازوی میتونه حتیم به کفرش کنه بگه چون اسرار بر معاصی کبیره داره این از دین خارج. نتیجه خاری از دین بودن پشکنی قدر و اونوقت این سلایز به دست قولی های که مردی بود به نام اولمهجن سقفی این اولمهجن سقفی از صحابه پیغمبر در طور پیغمبر با و مرد بسیار شجاعی، بود. ولی شراب بکرد پرچه هم معنیش میکردن چون خیلی آدم شجایی بوده چیزا به اصطلاح اون کسانی که معمور اهم بودن اینا چشون رو هم میذاشتن چیز نمیکردن و دیگه بالاخره عمر حوصلش تنگ میاد اینو همراه یک کسی میرسه که تبعیدش میکنم به جای دوردستی اول مهجم تصمیم میگره که اون ببار با بکشه و اونم سرحساب میشه بلش میکن در می اولمهجن میاد به قشون ایران که سردارش سعد و بوده میپیونده و اونجا باز شراب میخوره و سعد میگیره زندانش بوده. اتفاقا روز خیلی حساسی پیش میاد و سعدم ناخوش بوده. اولمهجن پیغام میپرسته برای زن سعد. که تو، من تو زندان، تو عصف و زره صعد رو بده به من من سوار و برم و ایرانی ها زور آورده بودم اینا رو دفت کنم، قول بیدم که برگردم دوباره تو زندان رو بودن. زنم زنه هم میکنه میکنه، یعنی زره ها عصف میترسه و اول مهجن میاد و سوار میشه و میره جنگت مبسوطی میکنه و قرار کنم که رد می‌کنه یونیا رو خیلی شجاعت زیاد میده و سعد و اقص هم که بیمار بوده و تو خیمه بوده و نگاه میکرده اینه یک کسی سوار اسب او با ذره او و اینا عین خود سعد اومد و جنگی کرد و گروه مهاجم و رد کرد و حمله کرد و شکست داد و فرار کرد عبالبنشان هم توش که قول داده میگرده و عصف و ذروع و عصف میده و می به زندانش بعد سعد از زنش میپرسه که قضیه چی بود؟ میگه که قضیه این بود که عبالبنشان جوری پیغام دازه منم موافقت کردم او بعد خب از زندان بیرانش میاره چون چیز داشته میگه که الان ببینید سعد میگه که من دیگه تو را حد نمیزنم و مجازاتت نمیکنم کنم باقی چرا اونم میگه من دیگه وزید شواب میمکنم و بعد حالا خورت یا نخورت بنده مرد در هر صورت اینقدر چیز دست شونه که این صد بار مثلا جواب پرده چون آدم شجاعی بوده و فکر دارن وجودش با ارزش چشتون هم دو یه وقتم اگه لازم باشه دفعه سبب هم بابا رو بین اعلام میکنن و پهکش په په میتن سرش میگورن بره این است که در این دوره که این احتمالاً در دوره مبارزه دین گفته شده پادشاه خوندریز ظالمه مقدس ما اینگه که بادر رو پنهان بخورید برای اینکه تکفیر میکنن یعنی کار خیلی شدید شدت عمل نشون میده اگه بزarin تذویر میکنن یعنی خیلی اذیت نمیکنن برای اینکه قاعدتاً وقتی یک مسئولین 80 تا تاجر نشه بکنن و قاضی اگه بگه چل تا تازیان روز بزن، لطف کرده این که نمی رسونه، این کاره بدی نکرده، خیلی هم کوب کرده این عکس دشتی، یعنی حتما تکدیر درسته به دلیل مسائل شرعی که هست و با اینکه نصف خلقالی داره تعذیر، ولی درست نیست، تکدیر درست. بله خطو بله, خطو بله. خطو بله. گویند رمز عشق مگویید و مشت نویید مشکل حکایتیست که تبریج می کنید می گیر که البته اینجا طبعا عشق الهی اینجای صوفیانه او اینا رو می که اولیای شریعت با کارهای صوفیانه هم مخالفن با همه غیر مخالفن و وقتی هم که فشار دیوی زیاد میشه درست موقع رواج بازار سوفیان هم همینجا در امریکا رواج بازار سوفیان و بین خود هموطنهای عزیز ما میبینید لازم به, به خود چشاتون واقع کنید خودتون میبینید لازم توضیح منید میگه گویند رمز عشق مگویید و مش نبید نرمز رو بگید نبش نبید میگه خیلی کار مشکلیه حکایت مشکلی است که اینا بیان می کنم. یعنی این کاری که نمیشه انجام داد خیلی سخت انجام دادن. ناموس عشق و رغن عاشاق میبرند ناموس اصلا به قانونه ناموس ناموز طبیعت اینه یعنی قانون طبیعت ناموسش عشق و رونق و شاه میبرند من و می و جوان و سرزنش پیر میکنن در سه نسخه و از جمله نسخه مرحوم قزیمی نسخه خرفالی هست ای به جوان و سرزنش پیر میکنم و بنده هم در حافظه همون ای به جوان و سرزنش پیر میکننده به نظر منم بهتر میاد که ای باشه ولی خب اکثر نسخه‌ها نه نسخه شیش تاش بوده سه تاش ایف بوده اینه که مرحوم خاندری مان رو ما از قرون در صده مغروب بریم. این اینجا همه میگه ما مرازش خاجعافه هم اون حاکم هم این مردم رو کل جماعت میگه ما همه این تقریباً همون مضمون روای خیام اصرار ازل را نه تو دانیجا نه من این حل معما نه تو و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو و نه من میگه ما بیرون در مغرور شدیم مغرور غرور به معنی سریزه مغرور یعنی سریز خورده تا یه وقت کسی دیجا آدم گول میزنه یه وقت خود آدم خود چه گول میزنه ما از برون در شده مغرور صد فریب تا خود در اون پرده چه تدبیر می‌کنن می‌گه اون راز در اون پرده رو کسی اصلا نمی‌دونه تا ببینی که در پرده چیکار دارن می‌کنن آها دست شما بازت تشویش وقت پیر مقان میدهن باز تشویش یعنی آسفته کردن میگه وقت پیر مقان رو آسفته میکنن پیر مقان رو خاجه علم کرده در برابر پیر صوفیان که قبولش نداشته در برابر شیخ یعنی نفر دوبم در تصوف اینهای گفتن قبلا شیخ حسن منی آخوند تو سعدی و حافظ اینا نیست نفر دوبم است در سلسل مراتب تصوف یعنی سرطرست خانقا و رئیس کلشون پیره این است که چند جا میگه حافظ که من پیران خانقاه رو قبول ندارم سرز حسرت میرسیم بهش سرز حسرت به در میکده ها برکردن چون شناسای تو در ای یک پیر نبود میگه هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم بنابراین پیر من کیه پیر مقانه پیر مغان پیر میکده البته می رو هم میشه اصطلاح ارفانی گره و هم اصطلاح عادی به هر حال در میکده یه مقداری مستی و راستی و یه مقداری رو راست بودن هست و پیران میکده آدمای های خیلی قابل ملاحظهی بودن من ناچارم اینجا این قصر رو که شنیدم بگم یه عرق بود اول شعباد، میدون بارستان که تمام نیشد که خواستید برید تو شعباد، اون نبش یعنی اولین دکونه دسته راست در خیابون شعباد یه ارمانی بود به نام ماتاووس که ونده در سال ۱۳۰۰ تا اول بار منو بردن بذارن مدرسه مدرسه سیووس بود بجای اون مدرسه شعباد نزدیکه مدرسه بود که ما بردم بزارم این ماتاوس اونجا آبز و داشت و سال قبل از انقلاب هم همونجا بود و همون بکره باشد این آدم واقعا یه پیره به تمام معنا بود یه چند تا از این جبونا بعد از اون فیلمی بود که جیمز دین درست کرده بود که بعدا هم پشتشو در نهاییمون شد این جبونای آسفاس رو از این گنگ‌های امریکایی که اون وقت را افتادن و مردم رو چیز می‌کردن اینا اینا یه مش پیداو در ایران پیدا کرده بیدن ارز کنند که چند از این بچه لات‌های چیز بودن که مزاری تحصیل در دیرتونی مثلا کرده بودن سوادی داشتن چیزی داشتن ولی طبشون به و خرابکاری و خارف کرده متمایل بود و اینا یه دسته‌ای از اینا می‌ان و دوتون می‌اند آقا عرق بده، آقا آب بده می‌دونم یک کیلو کارباس بده چی بده، چی بده، همونجور چیز می‌کنه بعدم میگه که ماشینم حالا روشن آتومبیلی اونجا نگه داشتن یک کم فرد خواهر می‌کنم و بعدم میگه که اینا رو بده بگره بذار تو ماشین و بعد می‌گه که راستی اون مثلا چهارتام آب معدنی می‌خواستیم، یک جای دور دستتریه میره ماتاوس بیره خود با وام را میفته و میاد میشن تو ماشین میره این میگذره سال ها میگذره بعد از دو سال سه سال مثلا پسر فکر کنه که ماتاوس غذیه رو براموش گرده میاد اونجا که عرقی بخوره یا آب جوی بخوره با همون لحچه ارمنیش میگه که آقای مثلا ساروخان شما یه شب یه جنسی از ما بردیم یه صد توانی به من داده بودیم یادتون رفت باقیشه ببیرون باقیشی اینجاست مثلا 34 و چهار توان سی هزار دعیشه باقی کل شماست این رو ببیرون این بچه از پیجالت اصلا خوش میشه و طبعا چیز میشه دیگه خیلی تحت تحصیل قرار میدید و نظایر این را بسیار سر می زد ازش مثلا بچه های جوان های خانواده های اطراف اگه می در دکون این یک چیزی بگیرن تا پرسجوی مفصل نمی کرد که برای چی می‌خوای، برای چی می‌خوای، نمیداد بهش یا می برو بهت نمی که اگه که خودش نخواد چیز کنی اینا چیز می کرد خلاصه یه آدم امسانه به تمام عنی. و خب این نمونه ها در چیزم کم نبودن اینه که پیر مقان که میگه حافظ واقعا یه آدمی بوده که یه همچیز صفاتی رو داشته در زند پیران سومعه ناچار بودن از یه مثال خون خونداری هیچ علاجی نداشت بنده ملک بخوام یه رهبری بگیرم بکنم مرید بگیرم اینا ناتارم یه تظاهراتی بکنم یعنی یک کارایی رو که دلم میخواد یا پنهان بکنم یا جلو مردم نکنم یا دعبی بکنم که نمی کنم. یه بازیه و دردیه و این خوب نیست که این ریاض و ریاض بالاترین گناه در اسلام و در هر دینی یعنی شرکه میگن شرک خفیست یعنی برای خدا شریک قائل شد نیست که نماز تو وقتی یک کسی اومده نشته طول بدی و خیلی با تو معنی نو اینا بخونی وقتی کسی نیست خب این معنیش اینه که اون بابا ببینه که به برچه آدم خوبی چه مومنی چه نماز خوبی و جا میاره اینا این در حقیقت اون آدم شریف که خدا کرده یعنی برای جلب و حسن نظر او عبادت تو چه چهت بود. این خیلی یعنی بدترین گناه و البته کارش هم انقدر درازه که قضالی معروف میگه که ریا گاهی از رد دفاع موچه و سنگ خارا در شب تار پوشیده تنید یعنی شخص کیال میکنه سالها ده سال مثلا که داره عبادت میکنه حقیقتن ولی بعد یه حادثه اتفاق میفته کشف میشه که نخش دیام. بدون اینکه واقعا خودش چیز باشه. حالا من وارد اون جزیات نمیشم در هر صورت پیر مغان که میگه یه نمونه های اینجوری در هر جامعهی وجود داشته و اینا رو مردم میدیدن میگه تشمیش وقت پیر مقان می‌دهند باز وقت پیر مغان رو باز یعنی دوباره آشغته میکنن طال اینکه پیروان مبارز دینم هم جز همون راه خوش که شریعت که خودشون قبول داشتن هیچ چیز دیگر رو تحملشو نداشتن تشویش وقت پی مقام مران باز این سالکان نگر که چه بافی میکنن سالک یعنی راهرو سلوک یعنی راه رفتن و مجازم ونی رفتن به راه تصوفه و سالک رحنی مریده که میاد در راه تصفف برای اینکه که مرسد برسید میگه ببین این سالکان چه میکنن با پیرشون پیر به معنی موسفیده اما از این که سنش زیاد باشه یا اصلا و فردوسی در داستان تولد زال یکی وقتی زال به دنیا آمد بچه نوزاد یکی پیر سرپور آزاده بود که اون ندید و نه از پیر سر یعنی سارشتی ولی چون معمولا سفید رو دن داره با بالا رفتن سن بنابراین به آدم سارپوزه هم پیر اما معنی دیگر هم داره، اون معنی یعنی رهبر قوم، رئیس قوم، رئیس قبله تخصوص خصوص رئیس روحانی رو بشنگن پیر. و بعضی از این پیرات جوانن خیلی. تشویش وقت پیر مقان میدهند، باز، این سالکان نگرد که چه با پیر صد آب رو به نیم نظر میتوان خرید. در فقط نسخه خلقهالی نسخه که منم قضیمی هست صد ملک دل به نظر میتوان خرید و به نظر من بهتره شاید احتمالا آخرین تصمیم که آفس گرفته اینه ولی در یک نسخه بیشتر نیست از نه نسخه مرمو خاندادی در یکیش بیشتر نیست با اون نسخه از این قدیمتر از نسخه خلقهالی در حال حالا یا آب روی یا ملک دل صد ملک دل به نیم نظر نیم نظر یعنی نگاه خیلی خیلی بله سرسریه کتوبی صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید صد در مقابل نیم صد تا ملک دل صد اینجا قید کسوته یعنی بسیار ملک دل. چون عداد گاهی وعنی عدد به کار می‌رم وقتی من بگم که مثلا من 5 تا کتاب دارم یعنی پنج تا کتاب دارم گاهیم به صورت قیده اوست که بگم 100 دفعه گفتم این کارو بکنم صد دفعه گفتم یعنی بسیار گفتم یا یه وقت می‌گم که من سن نار پول ندارم شاید 100 تونم پول بگیرم بشه معنیش اینه که من کمپولم پس عداد فوچک به معنی قید قلت به کار میره و عداد بزرگ به معنی قید کس ره. هزار دره هزار پا هزار پا هزار, پا هزار تا پاک که نتوشید یعنی بسیار پا توی هست در راه خراسان خراسان همست. هزار مسکت یا آذربایجان جنگه ندرم در جغرافی اونان هزار مسجد همین نزدیک تهران جای 1000 دره بشونده. به اضافه که نادر یعنی بسیار دره. گاهی حتی اعداد کوچک هم به صورت غیری کسبت به کار مثل که بگیم آدم چهار آدم چهار یعنی آدمی که اندام درشت قبلی داره. ولی کسی چهار شونه که نداره. یا آدمایی که ابروهای پرپشت خیلی درشت دارن بهشون میگن چار ابرو. ارز کنم که یه لات ودبختی تو محل ما بود معروف به بو حسین سکله این سرش بزرگ و من مدت ها بزرگ شدم خیلی مثلا 25-6 بود بعد فکر میکردم همش بکردم که این حسین پس اون دوتی کله دیگرش کرده <تصحیح> اینا غیده اینا هیچ عدد عادت. و این هم همتونه. صد ملک دل یا صد آب رو به نیم نظر میتوان خرید یعنی بسیار خوبان در این معامله تخصیر میکنم تقصیر یعنی کوتاهی کردن قصور یعنی کوتاهی شدن یه وقت شما سر وقتم را میرسید میخوایید بهت سر کلاس نمیدونم همه پیشمیهارم میکنید ولی یه اتقام دیر میدونم این قصوله یعنی شما قصدن نخ... نخواستید که دیر بیاد. یه وقت نه بیموبالاتی میکنید و میذارید و همین میشین و, می و بعد وقت میگذار و بعدم دیر میدونم این تخصیر یعنی کوتاهی کردن اون وقت تقصیر کننده میشه مقصر، قصور کنند میشه قاصر. قاصر یا موخصر. قاصر کسی که کوتاهیش به اختیار خودش نیست و موخصر کسیه که کوتاهی کردنش به اختیار خودش. نیست. خوبان در این معامله تفصیل میکنن یعنی خوبان در این معامله کوتاهی میکنه. حالا دو تا بیت بعدی به هم چسبیده. میده میگه گروهی طرفتار جد و جهدند. میگن وصل دوست با جد و دست میده گروه دیگر میگن که باید دید سرنوشت آدم چی هست و هر دوتا اینا وجود داشتن و هر دو چیزهای محکم داره ها برای اینکه در دوره حافظ و سعدی اصلا تفکره دیرینی اون روزگار که بر اساس تفکر اشعری بوده این است که اگر کسی آدم خوبیه این نباید به خودش به باله که من آدم خوبی هستم کار خوب می خداوند به اون منت گذاشته و توفیق بهش داده که خوب باشه حتی میگه این دست بلند می به درگاه خدا تک نکنی خودت کردی این سررشتش در عالم قیبه اون میکشن دو از میره بالا و برای اینکه خلق و عمر به قدرت خداست و هر کاری میخواد خدا میکنه و از بنده هیچ چیزی ساخته نیست اگر کسی حتی یه حدیث هم هست در این مورد از سعید و سعیدون توی بطن امه و شقید و شقیدون توی بطن امه آدم خوشبخت، خوشبخته در شکم مادر و آدم بدبخت، بدبخته در شکم مادر بنابراین عبادت کردن و نکردن تأثیری نداره، یعنی کسی نمونش هم ابلیس رو مثال میزنن که هزار سال عبادت کرد ولی تقدیر خدا این بود که اون مردود باشه این است که در یک آزمایش راحت شد، راحت شده نکنش عکس قضیه هست کسانی که تمام عمرشون کارهای بعد کردن نه ولی ایتون تقدیر الهی این بوده است که اینا من بشن و درست از دنیا برن با یک کار بحشی داشت این است که مثلا سعدی رو بخونید اتفاقا امروز یه چیزی سرکلاست درس میدادم آخر باب هشتون در شک بر آفیت قصه بوت سومنات قصده شبیه داستان پولیسی <تصفيق> از حتبا میگه رفتم در قطخانه سومنات و بعد که مده زیادی مردم اونجا هستن و چی هستن و چی هستن و بعد به یکی گفتم که آها این مردم این که از سنگ این مگنم این چشمش از کهربا ساختن اینو چه موجزی میخوان ازش این چی چیه اینا دیدم که خیلی به من چپ چپ نگاه کردن اینا بعد گفتم که ببخشید من قریب نمیتونم. شما من دارم تحقیق می اینا تو خیلی خواهید اینجوره پس تو بمون تا شب اینجا باش فرد صبح میبینی که چرا مردم میگم میگه من شب موندمو و صبح سهر دیدم که ولی مردم آمدن از این و رزیمان رو پر شد یه مرتبی دیدم که این بود دستاشو بلند که از طرف خدا برای اینکه میدونی که حتی در قرآن هم که از بود و بود پرستی صحبت میشه میگه که بعدی که می پرسیم از بود, بود پرستایی که اینا چیه شما همی پرستیم میگن ها اولائه شفعا اونا ایندالله ما اینا رو مذب خدا شفی میریم اگر نه به خدا متقد بودن فکر نمی اون بود خداست من حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، این اولمهجنی که نوشتم و این که این اولمهجن سقفی جز قهرمان های داستان های یه داستان عوامانه یه نام بنامه که قهرمان اولش مولای محتقیان مرتضا علی است جنگ با دیب و جاغو و اجتهاب و با این جزای خیالی همه بعد دو نفر از نزدیک ترین سردارای علی هستند در این جنگ هایی که مالک اشتره که توی این قصه شده مالک اجدر و یکم ابولمهدن سقفیه که شده ابولمهدن این نوشتم توضیح نرزم حالا برگردم سر کار خودم می‌گرفتم رفتم. و گفتن و زد که این بطه دست بلند کرده و مردم تو سر زدن و گریه کردن و چی کردن و من دیدم که خب اینا گمراه هم فکر کردم که منم باید حالا چیز کنم به دروغ با اینا همراه شدم و گفتم بله بود دیدم و چقدر خود اینا و فراسه مدتی امین اینا شد بعد یه شب موندم در گودکده بود بعد وقتی که خلوط شد داره دهی رو بستم رفتم، این ورومر گشتن در یه پرده ای هست پرده هایی که کشتن در یه برحمنی اونجا میشه سه هم دستشه و قصه روشن اخشن شد این کشته و این بود دستش هوا بعد دنبالش حیلی داستان این چه که میگه که و از این مسکه دنبال من کرده و من دنبالش کردم و بردم و اندخانش تو و سنگ دادم تو چاپ پشتمش رو پدرش دارا بردم برای اینکه اگه زنده میمون نخواست سر من رو زیر آب کنه و من چه کنم چه کنم به اونا ندارم بعد میگه که من از این تهندها گرفتم یکیش این که وقتی که خودم دست به درگاه خدا پلنگی کنم فوراً اون بست بیادم اون بطر یک کسی اون رشتر اون پشته این دستش میرفته باید منم اگر دستم به درگاه خدا بلند میشه این توفیق الهیست که خداوند به من داده که من میتونم دستم بلند کنیم بعدم میگه میگه در خیر و در نیفوکاری باز ولی همه که هست نمیتونم این توفیق رو نداره برای این طرز تفکر اون روزی بوده بنابراین اگر میگینید که میگه که با امیدگر حواله به تقدیر میکنن خیال نکنین که میگن که بگیره بیشینه خودش میاد نه میگه گروهی معتقدن که وصل دوست با جد و جد دست نده گروهی دیگه میگن که تقدیر در این هم خیلی محسد ولی با همه این حرفا فیل جمله فیل جمله خلاصه اعتماد مکن بر ثبات ده جمله اصلا یعنی چیز کوتاه، کوتاه در این واحد سخن جمله است کلمه که نیست ما هیچ وقت در هیچ زبانی در دنیا نمیگیم در نمیگیم آب هیچ را. نمیگیم کتاب اولین چیزی که میگیم یه جمله است میگیم در را ببن کتاب را حتی اگه اشاره بکنیم و اشاره هم بگیم این اشاره معنی یه جمله رو میده. پس جمله یعنی کتاحترین واحد صفحه اجمال نگاه اجمالی یعنی نگاه به اختصار به کتاحترین پس فل جمله یعنی به طور مختصر به طور کتاحت یعنی خلاصه واحد صفحه کلمه نیست و دستوری که من رو دکتر خوانلری نوشته از همینجه شده کنیه از جمله میگه جمله چند توره؟ برای اینکه ما در زبان جمله ما جمله اجزا داره اجزایش نکنم مثل وجود آدم که وجود آدم یه آدم درست هست بگه ولی برای اینکه بیشتر به فهمن میان گردش خون رو جدا می‌کشند به شما نشون میدن که این جریان خون از اینجا میاد و میدو شرین ها و میاد تو برید و میوید تو بیه و میاد بدن و بعد و, و چه میشه و چه می این دستگاه بیرون که وجود نداره که یا دستگاه گوهارشون نشون میدن که بها دهان هست و مری هست و میده هست و روده رو هست و روده هست و روده بزرگ و چه و چه هالی این که بیرون روده که وجود نداری مان همه با هم تنهایی و فکاره اگرم به کار بره به معنی جمله مثل اینکه من بگم در یعنی در بهن حتی اشاره بکنم، بازم یه جمله بعد شروع میکنه که چند روز جمله داریم. بعد شروع میکنه که اجزای جمله چقدر در حالی که دستوریه که پیش از دکتر خان لا نوشته بودن همه از کلمه و از حروف و از دین و زبر نشروع نکردن و وقت تا برسه به جمله اصلا گمراه گم شده بود اصلاً. و همین دلهم هیش اکه یاد نگیرد فل جمله اعتماد مکن بر ثبات در ثبات یعنی پایداری و ده یعنی دنیا میگه به پایداری دنیا تکیه نداشته باش که این کارخانه است که تغییر میکنه. دنیا دائم در حال تغییر و تحفلی بعد یکی از شگردای حافظ یکی از روش های کار حافظ این است که یکی این که به در میگه که دیوار گوش کنه یکی هم هر اشکال و عیلی که هست به خودش نسبت میده برای اینکه دیگرون بفهم. یا خودشو قاطی اونا می میده که شیخو به همون معنی که گفتم معنی تصفی شیخو حافظ مفتی مفتی یعنی قاضی چیز که فتوا میده مفتی از فتوا محتسب یعنی بازرس شرعی اینجا براتون بگم یکی از بهترین کتاب که وجود داره واقعا و اصلا عربی ولی ترجمه پارسی شده و منتشر شده است که اسم عربیش هست معالم القربه بی احکام الهسته در احکام مختصف این تحت عنوان آین شهرداری ترجمه شده به وسیله دکتر جعفر شعار دوست و همدوره عزیز بنده و خیلی کتاب درجیه در ظاهر وظیفه محتب شرده بود که ماسب چه بود؟ ولی میگه مثلا محتب تمام کار شرداری مثلا اینکه نظر کسی ساعت معبرکن راه رو ببند مثلا نظر کسی کم فروشی کن. با حرسی بکنه سنگ های مردمو مردم رو که کم نباشه. بادری مواد غذاایی نمیدونم انواع افسان این کارا، و در ضمن اینا تقللبایییم که میکردن و کارهایی که می شده اینا هست تو این کتاب و از نظر اجتماعی برای اینکه ببینیم که زندگی جامعه در۶ هصد سال ۷ صد سال پیش چهجری بوده و چه کارا می مثلا چه تقللبایی می کردندن چه بازی در میوردن کم فروشی چه جووری بوده ؟ سایر کارا چه بوده؟ خیلی کتاب مهمه و حتما این کتاب رو بهتون توصیه میکنم بخونیم و اینکه خوب براده جالبه و مثلا بعضی چیزا هست که ها بینیم سابقه چند صد ساله داره خوش درونه گاب رو میگیرن میپزن بعض ریشیش میکنن و کتا کتا ریشیش میکنن میدازن تو آب زعفرون رنگ میچه میدارن خوش میشه می‌جان وقتی ضعف بدید. هیچ هم نداره فقط یه مثال ضعف برام می خواد دو مثال. آ. سامیت اینم نداره. بله بنده. آره ممکن. بنده دیوان خاقانی رو می‌خوندم خاقانی در حدود سال, سال 600 مرده. یعنی 815 16 سال این آدم مرده. تو شعر سید که هر ذات نوگلی است تصری هم حریفه بود. آری زی گوشت گاب اوت بار ضفر رو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بار ضفرون ضررب مسثر بوده در دوره فخوا <تصفيق> <تصفيق> یعنی این انقدر بوده که ضررب وصل شده مثل این را گل از خورم هست میگه گوشت بار ضعفرونهه این اوده تو شعر تو شعر فاخواه حالا از کی شروع کردن این کاره هنوزم ادام میدهم کدام میده. نه خیلی، روی یه باید بذاره مفتی یو بنابراین محتسب اسم فعالی از احتساب و احتساب یعنی بازرس شرعی وان یادم دوره بچگی ما سفورها رو میدوستن احتساب برای اینکه اسم محترمی بذارن در ضمن سفور هم که میدوند از سویفر انگلیسی اومده سفور یعنی جارو بله اول از جنوب چون در جنوب ۱۰۰ نخوض زیاد داشتن جاروکه شده سویپر سویپر بالا نه اون رهبر ولی خب از مفتیگری شدی کرده اعظم مثل غازل غزا غازل غزا توییس کل اینجا ایستگو نه، جایی اینجا کردن. نه. کارخانه رو کارخانه تغییر نمی‌کنه. تغییر میدن، تغییر کردن و تغ... تغییر کردن جنبنی تغییر دادن. میده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تغییر، فهم زور در عربی معنی دروبه. و مصفر این یعنی دروبه. و تغییر یعنی دروبه. البته یه نوع ترشیگی هم از مزفر بهش میگن یه نوع آشین کفتن با آشین و یه وقت حالا این رو بعد اینجا مزفر مزفر زور یعنی دروف روی این یعنی دروف روی مزفر یعنی دروف روی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> من فکر می‌کنم که آبروی معنی من خیال می‌زنم حالا گذشته از من مرتجل ترجمه این یه جور نیست که ولی ترجمه خ... ها بخاطر خودی تا <تصحب> 12 تا این غزلهای درجی یکم جور تمام هستن. و آن یکی از ایکی اون حافظ طورم هست حافظ همینطورم هست صاحب میگه صاحب مرید حافظ بوده می خیلی میگه که حسن خداداد او شدم معشوقش میگه حلا که حسن خداداد او شوم که سراپا چه شعر حافظ شیراز انتخاب نداره رحافظ اون که انتخاب ندارید دهتا بیشتر دوشتری طرفان یه غزل غزال سر هم هست همش یکی از یکی بکرد بنا. خب بخون جانم نه نه نه نه کارخانه یعنی محل کار هم درست به همین معنی امروز منتها اون وقت ماشین و موتور به این صورت که نبوده یه کارگر بودن باید دستی رو کردن منیفکچره امروزی میشه گفت کارکان دنیا رو میگه دید. دنیا میگه کارکانه است که دائما در حال تغییر امیتوهایش میگونست؟ خیلی عشق باشه لآخال نوات بله، الان بخواستم توضیح بدم بله، بله،, بله کنم که متاسفم، نه در چیز، در ترکیه کارخانه معنی... گیر <تصفيق> افتادی <ای> اونجا؟ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اونو میگن کابریک کارپونه میگن کابریک با کارپونه خیلی بوششت خیلی عوض ها جنده که ندارن میگن کرهنه کرهنه <تصفيق> ای. بله این سو تفاهمات <تصفيق> بچه هم تعریف میکنه که رفته بود اونجا خب اینا پورتوسو بعد میفهن آذربایجان در ترکیه اینا رو تحویل می‌گیرن روی چیزای پانتورکیسم برای تعلیقات پانتورکیستی <تصفيق> و اینا که خیلی هم چیز یه عده‌ای از کرده های ترکیه اینجا دخونی هم راه انداخته بودن دکتر هیئتون هم می‌دونم همسال اینا نشریه می‌دادن چیز میکردن علاکارت به اون مسائل نداره Mesela arzuz yine نشسته بود و استاد اومده بود و بعد پرسیده بود از هر کسی که نه چی اونا بعد پرسیده بود که خب بابای تو چطو آن میکنه اینام یه چرخخانه بود. یه کارخونه چه. بعد این از کلاس میاد بیرون مینه بچه‌ها هیچ باش حرف نمیچن هست. هر کسی میاد میونه می میرن کناره سن روشونو برمی داره. تا بالاخره بعد چند روز یه توری میگه چی آخه؟ میگه خب هیچی تو وسایل بیشرفانه این بارو معاش میکنی به قول قانون انتخاباته نوشته بودن که از حد انتخاب کردن انتخاب شدن محروم یکی هم کسانی که وسایل بیشرفانه این بارو معاش میکنه یعنی هم برحال بعد بالاخره معلوم میشه که قضیه چیه بر... بله اون میگن لامپ لامپ چیزم لامپ توشنایی رو میگن آمپول به هر حال بخونم شروع بی و سر ویت و دام درخان چیزی دخان دخان دخان دخان دخان دخان دخان دخان دخان دخان شرط دخان دخان چوز به شرط عدب که ساکنان درش مهرمان آدشه جفانه هست جفانه پیش یک درویشی از و راگ روی بیاد باده که این سالکان نمرد برند مدین پکیم که دایان اش را کنگون شهان بی و خسروان مکن که کوکبه‌ی که دلبری شکسته شود. ماکن که کوکبه‌ی دلبری شکسته شود. نه نه نه. مکن که شکسته شود، بندگان بگریزند و چافران بجنگند. مکن که کوکبه دلبری شکسته شود. تو بندگان بگویزند و چاکران بگنم اولا مهمت دردی کشان یک رنگم نه اون روح که از رق لباس و دلسیه هم به روش باش که هنگام باز افترنا هزار خرمت خرمن ساحت که نیم دو ننفر جناب عشق بلنده هست همتی ها که آشغان، زهبی همتان به خود ندارد خیلی غزل فوقلاده است غزل بسیار زیباییست است. من اینکه از خیلی جوانی، از زیر بیستالگی این حفظ دارم شعاق بیغش و ساغی خوش دو دام رهند به زیرکان جهان از کمندشان نرهند من هرچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه هزار شد یاران شهر بیگونه هم. قدم منه به خرابات جز به شرط ادب که ساکنان درش مهرمان پادشاه جفا نه پیشه در بیشی از یار باده که این سالکان نمرده رهم مبین حقیق که دایان اشکا تین شهام بی کمر و حسروبام بی کله هم مکن که کوکبه دلبری شکسته شود چو بندگان بگریزند و چاکران بجه هم. غلام هممت دردی کشان یک رنگ هم نه آن گروه که از رق لباس و دل به هوش فاش که هنگام باد استقناه هزار خرمن تاعت به نیم جو ننه هم. جناب عشق بلند است هممتی حافظ که آشغان ره بی حمتان به خود نده میگه شراب بیغش و ساغی خوش این خوش در حافظ خیلی میاد و هزار تا معنی داره در حالی که ایش شعرهای ناشی بدتر از بنده این خوش جزه پار آجورهای شعری. یعنی هر جا کم میارم یه جا وضعی می کم میشونم این خوش و بیدل و نگیرم امثال اینا اونجا رو پر میکنم در حالی که توی حافظ کاملاً مفهوم داره و مفهوم بسیار بلندن داره ساقی خوش یعنی ساقی که همه شرایط درش جمع داشه. هم معرفت ساقیگری داشته باشه هم زیبا باشه هم نمیدونم حیکلش انباه اصلا دیگه چیزی کسر نداشته باشه شراب بیغشم که قش یعنی آمیختگی اینه حالا آقای مخشوش یعنی چیزی که در حیرت آمیختگی قش آمیختگی چیز و هاست با چیز گرانباه ها درست مثل زعفرانی که عرض کردند که گوشت گاب رو میزن توش به قیمت زعفرون میفروشن این میشه مخشوش یا مثلا نقره قاطعی طلا میکنه به قیمت طلا می. این نوود درصد مثلا ایارش نووده ولی نوود میشه مثلا در نمیدونم انواع اقسام هر چیزی که چیز ارزونتر رو بزنن دستش که در به قیمت گرونتر نوشنن این میشه قش و شراب قش یعنی شراب خالص شراب خوب بیگیرات شراب بیقش و صاحبی خوش یه تا دام هن که هیچ زیرتان دنیا هم از کمند اینا نمیرن همه ی آدم های هم گیر اینا میفتن به دوم تنزه بسیار بسیار قشنگی ده و همیشه تنزای حافظ تنزای ملایم نامحسوسه که آدم باید دقت بکنه تا ببینه که من هرچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه حالا آدمی که حافظ قرآن قرآن رو در چهار در روایت از بر میخونه از علمای بزرگ روزگار خودش موسیقی رو به حد کمال میدونه خوش آبازه. این زوق داره با این شعر این چجوری میتونه صبح تا شب عرق بخوره نمیشه دست کشم گیرن گیرن این زنده رو خونش. نمیشه هم چیزی که همچیزی با این حال همه اون چیزای بد و به خودش نسبت میده، به در میگه که دیوار گشتم. من هرچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه هزار شد که یاران شهر بیگونم الحمدلله. اخه، آخه عیب از مردم یکی از اشکالات بزرگش اینه که چشم بین خود آدم رو یعنی وقتی حتی چشم شما همش باز بود که این یکی چه داره، این یکی چه داره اون یکی چه داره، اون یکی چه, داره،, اون چه, داره،, اون چه, داره،, اون چه داره کسی که این وسط طبام رو شد خود آدم که علمتی هیچ اشکالی نداره از هم و اگر آدم چشم عیببین دیگران رو ببنده اون وقت چشمش متوجه معایب خودش میشه اینه که اینجا پاپس این نکتره میخواد بگه که خب مردم که بیگناه هم همه شون فقط منم که این وسط عاشقم و رند و مست و نام نام سیاه هم مراد اون نامه عمله که کرام الفاتبین می نبیسن. کرام الفاتبین اسمش در قرآن آمده گویند که دوتا فرشتن یکی بردوش چپ نشسته و یکی بردوش راست در تمام دوران زندگی هر کسی اون که بردوش راست نشسته اعمال خیر شخص رو می نویسه و اون که دوش چپ نشسته اعمال بد شخص می رو و روز قیامت که اشخاص انگیخته می اگر نامه ای عملشون، دست چپشون باشه، گناه دارن، بعضشون خراب، نیست بند. اگر که نامهشون دست راستشون باشه، بعضشون مرد و نام سیاه میگه کسی که نامه ای عملش از اون دست چپ تا پایین سیاه شده. <تصفيق> هر دو شده، قاتبین دوت قاتبین، جمعه من هرچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه ازار شد که یاران شهر بی قدم منه به خرابات خرابات رو در مقابل خانقاه حاجم میگیرد نه آخر آخر رند و خودش هم که به کار میبره مردم اونو صفت خوبی نمی‌دونستان. اینکه با قوارع معطلیه. بله. قاعده خراباتو در مقابل خانگاه بکان می‌ره و جایست جا که آدم خراب بشه. البته اینم بسیار حرف زدم، مقاله ها رو مفصل نوشتم که حافظ با مذهب نهر آشنایی داشته. اصلا شاعر مهری بوده، مولانا مهری بوده، برای اینکه که در معصحب مهر درجاتی هست و ترتیباتی هست و اسم ها و لغب هایی هست که خیلی شبیه به دستگاه ارفان ایران. و هیچ وعید نیست که اون افکار نفوذ کرده باشه من غیر مستقیم، به دستگاه تفکر ایرانیان بعد از اسلام. اما مذهب مهر یعنی میترایزم هیچ وقت در ایران مذهب رسمی نبید هرگز و اصلا این در حقیقت بزرگ کردن ایزد مهره که ایزد مهر از ایزدهای قدیم پیش از زردشت که وقتی که زردشت آمد اهورامزدار به عنوان خدای یگانه مطرح کرد ولی بعد از این که زردوشت درگذشت به قدر این ایزت نفوذ داشت که در پایه های عوستا که بعد نوشته شد یک پصل بزرگ هست به نام مهریشت مهریش ستایش این ایزت نیکن و بعد این میتراییست در دوره اشکانی که میدونید با اشکانیان چیز بودن اشکانیان احشایر بوده یعنی حکومت قبیلهی بوده و در اسلام هم میگن ملوک و تواعف که بعد برشن ملوک و تواعف و ترجمه فیودالیته اروپا گرفتن این دوتا با هم خیلی افتلاف دارید فهم هم ندارید ولی خب اینجوری ملوک و تواعف یعنی پادشاهانی که از قبیله ها میگنم خیلی و قبیله و اشیره خاصیتش کوچه اینا جایی ساکن نمیشوتم در نتیجه امارات های عالی ازشون باقی نمی... نمیمونده کتیبه ها و سنگ نوشته ها و مجسمه ها و کتاب و دفتر و دستک و ازشون باقی نمونده و اصلا زندگی عشایری به قدر زندگی دوشواریه که مجال بسیاری کارها رو نمیده بردن یکی عرضگیه شما توی عشایر اصلا زن بدکاره نمیبینید کارن که فرصت این کار اصلا ندارن هیچ برد از صبح صبح با چه؟ چار بلنچه کار داره تا قروب که بیاد و دوباره اصلا پنگ کن و مرفت کن خود مرداش هم این کوچ داستانی واقعا از اشکال دوشگاری این است که یکی هرزگی در اونجا نیست یکی هم رعایت مقررات مذهبی به اون صورت که در شهر هست نیست اینا اکثرشون چیزی از دین و اینا نمیدونن سرجام ملکم تو تاریخش می نویسه که مردم و اشایر و اینا چیزن. خیلی چیز ندارن به اصطلاح اطلاع ما هم زیاد ندارن و یکی از این خانهای و یکی از این قبول می در شهر در مشکین چهر فعلی که قبلاً خیاب می گفتن می پیش یه حاجی عطاری قند و چایی و توتونچوپق و نمیدونم مایهتا چی می برای به این حاجی می که تو شب بیا اینکه پیش ما مهمون ما باشه خیلی چیزه من میام اینجا تو ندام مثلا شاید نهاری چیزی هم روش کرده بعد میگه که سرجا ملکه میگه اونجا اونجای کسی قرآن بخونه، فکر من کسی مرده مثلا جز در مراسم مردنه کسی هیچکس قرآن نمید یکی بعد از مدتی اصلاح خان حاجی شب میره شب میره و بعد مهوم میشه و خانم خیلی عزت و احترام سفره از این طرف تا اون طرف و دوست کنه خیلی تعبیل میگیره حاجی رو تخت خواب پاکیزه بود جاده بود رخت, خوابیم، رخت خواب یعنی، هفته خوابی چادر جدا کنه و تمام این حرفا و حاجی میگه من صبح بلند شدم و قبل از نماز صبح و بزیگ گرفتم و نماز کندم و بعد هم عادت هم بود توی یه حزب قرآن یعنی یک چهارم یه یک جزب قرآن یک سد و بیست قرآن هر روز بکنم، حزقه قرآن یه شروع کردم یه قدر که از این قرآن کندم اینده یه چیزی محکم خود سر سره من برگشتم بیدم که زن حاجی اومده که مردی بیمه در حسین زلطم کسی مرده تو اینجا این قرآن نکنینا خانم یه دفعه میدو و میاد و زن ها که دعوا میکنه میگه برو میتربیت و میتربیت رو نمیدن فلان نو بایدن میگه حاج خیلی ببخشیم زن نادام بود میتربیت بود جسارت کرد خیلی میبخشیمش اما آخه شما اول باید تحقیق میکردیم کسی مورده این چیانها برد رو آن میکنم از که این زندگی اشایری اینطوری بنابراین خود اشکانیان بزرگترین تهمتی هم که بهشون زده میشد در طور ساسانی که حکومت ساسانی اصلا حکومت دینی بود، حکومت آخوندی بود و اولین کاری که اردشیر کرد، هیئتی تعیین کرد برای اینکه عوستار رو جمعواری کنند از این کارای خلصه آخون و دنبالش حکومت شیعه صفویه اینان تو همون کاره موبدان و و حکومت مذهبی ساسانی رو دنبال کرد برحال حال فهمت که میزدن این بود که اینا دین نداشتن در دوران اینا عوستا از بین رفت چنین شد چنان شد و حال اینکه مختزای زندگی اینا اینطوری هست که چیز ندارن هجاب مثلا ندارن زناشون ولی این نشانه هیچ چیزی نیست و حکومت هم اصلا چیز قاری بکارشون نداره ولی میدونه که اصلا نمیشه اونجا نه! نه! اون چه بوده هم در زندگی یاد میگره تن شاید یه مقداری هم یک کسانی بودن که دفتر دستکی داشتن ولی به طور کلی اصلا چه در حکومت عشایری که خیلی مشکلتر چه در حکومت مستقر شهری تعداد با بسیار بسیار کم بود. یعنی علاوه بر این سیستم کاست بوده یعنی یه ای اصلا حق نداشتم ثوادات داشت داستانی از در تاریخ تبرستان ابن میگه که یه وقتی انوشی روان محتاج شد اینغالی فوق قرض کنه برای جنگ محتاج گذافی بعد گفتن که یک کفاشی هست، کفشگری، این خیلی سربتمنده و حاضری که کلیده و گفت بیاد و آمد و گفت خب تو شنیدم که بعضی تو گفت دولت پادشاه، بله در سایه عدل پادشاه، من بازم خوبه بعد گفت مثلا مثل اینقدر احتیاج دارم، می‌تونید واقع بدی؟ مثلا بعد از یه سال، دو سال هم که اینقدر و دو برابر رو گرم اگه علا ازاد بخوان بنده نه تنها قرض میدم بلکه تقدیم میکنم و عوضم نمیخوام نمیخوام برگردم فقط یه استگاه دارم یکیه میگه من یه پسری دارم با استگاه او و چنین و چنان و فلان و اینطور طور و اون همه این کرده شما اجازه فهمید اگر قابل بود اگر لیاقت داشت، اگر توانید، اجازه بفرمایید که بیاد جوزه دبیران اونجا مشغول کار داشت انوشی روان راحت می این کسی، کسی که نباید تو این طبق باشه، این نمی بیاد با پول هم نمی این کار کرد. سیستم فاسد. بنابراین تازه حکومت شعریش هم چیزی نداشته که تصور رو بر فراموش کنید به علاوه اصلا مدرسه تا در اون تا 50 سال بیشتر اروپا هم تا پیش از رنسانس مدرسه یعنی مرته اخوندی. تمام شده. یعنی مرته بینی و مرته بینی دو دسته تربیت می‌شد. یکی کس کشیش بوده یا کم اولیای دولت. رجال نه شاگردای همین آخونده بود. اونجا یه مقدار سواد یاد می‌گرفتم برای فارغ شدن. همون شکرا. بعد که دانشگاه شروع می‌کنه جدا شدن و رنسانس به پیش میاد. در ایران هم مدرسه هایی خیلی از مدرسه های آخوندی شروع کرده تأسیس. شدن که مال ایران از ماست که چه ساعت سالی سال ساعت سالی درست کرد. آدرس ندار ایران، نه در اروپا، در چین، در بیت در هر جای دنیا مدرسه جوش مارسی بی نه سر ندارد. قدم من ایفر خرابا ادهی نوشتن که حافظ بله مهری بوده و چه بوده و چه بوده و خرابات هم اصلا خراباد بوده یعنی خرشیداباد بعد شده کم کم خرابات اینا توهمه و خیالات خرابات به سبک عربی شاید عربی هم نیست این الف و تم شاید یکی از علامت های جمع در فارس هم بوده است برای اینکه از قدیم در نواهی فارس اینا مثلا می جنگلات بوانات یه مشتحات خوش آب و هوای فارسه که خودشون چونگن بوونات. ولی بونات بوانات امثال اینا زیاد بوده و خرابات هم ممکنه همونطور باشه و به هر حال اینا جاهایی بوده که خرابات همه خرابه است و اینا معمولا خارج شهر بوده و معمولا جاهایی بوده که کمتر توجه جلب کنه برای اینکه کسانی که میرستن اونجا این نظاری آزادی عمل داشتن و یه کارهایی کردن که می میبزنن بنگی بخورن چون کشیدنش که اون وقت نبوده یعنی دود کشیدن اصلا بعد از کشف اندیکا به وجود پیش از اینکه امریکا کشف کشه هیچ دود تو آدم فرو نرفته بوده برای که اصلا اونا خرپوسه امریکا توتون و چپا بون کشتن و این میاد به چیز میاد به اروپا و از اونجا میاد به آسیا و مثلا در ایران در دوره صفویه بیه رساله های متعدد نوشته شده در مجاز بودن یا حرام بودن شرب دخان به قول یعنی دود کشیدن نمی کشیدن کشیدن نبوده اصلا یعنی دود تو سینفو رو بردن نبود. و اینو وقتی که اوکایی ها امریکا رو کشت میکنن از اونجا این عادت زشت رو یاد میگیرن که حالا اونا اسیرن و امریکایی ها سعی میکنن که این از سر خود با و هر حال بعد میخوردن میگیردن بنگ هم میخوردن میخوردن مثل دوبه وحدت درست میکردن میخوردن بنگ اصلا نوع این هشیشه کشیدن بعد اول توتون آمد بعد سایر چیزها رو اومدن امتحان کردن یعنی که هشیش رو با چپو و سیگار اینا میشه کشید چپاقی هم که تو ایران چپاق چاق کردن هشیش میشه یعنی زدن چپو سواری نه ارز کنم که تریاک اومدن امتحان کردن همراه توتون نمیشه کشی اون وقتی یه وسیله دیگری درست کردن در سایر نقاط دنیا به غیر از ایران با شعله هم یا شعله چراغ میکشن که 1200 درجه سانتیگراد حرارت داره و بسیار مزره با نگاری میکشن با اون وسیله که در جان شیر رو با میکشن. نگاری بشن در چین و اونجاها تحلیت که میکشتن با نگاری میکشتن و با چراق تو کلمه دیدیم و تنها جایی که با رو درست کردن و با زغال یعنی هردت قرمز که 600 درجه کشیدن و در نسجه بسیار نیست سالمتن این نوع بکار بردن مواد مخدره در ایران بوده و اللهمارحم <سؤال> بول الله تا این های چیز شده هم این ها که که یکی به تا این ماله، بازم زمینه اقتصادی بله، درسته خرگیش و آزمایشتو هستن بله، این همه این همه این حقوق بشاری حرف مفت مزخرفه البته اینکه بشری حقی داره، بسیار حت درستیه ولی فاسدتن این حکومتی که بیش از همه در حقوق بشری در شد عربستان سعودی. یه وقت دیده شده یا شنیده شده که اندیپرا یا جای دیگری از گل بالاتر به حضرت عربستان سعودی گفته بنابراین همیشه ایرانه که حقوق بشری در اونجا میشه دلیلش هم که ایران فعلاً خار راه ایناست تا الان هر جوری کردن که چیز بکنن نشده در ذهنم برای این تصورم از ذهنتون بیرون بکنم که بعضی ممکنه فکر بکنن که خب ایران به خاطر روابط درست بی یعنی آخونده دست از درگوزشون ورده من هیچ عبدا اگه با آخوند بجوشون هم الان این ضبط داره میشه به جیش من هم تو یه قطره از آب گوشتمن و اونا قاطع نمیشه اما تصور نفرمید اگر این حکومت دینی این لعفوزی که دست داره و به یکی خیلی خوب این مثل دوتا حریف مصابی با هم رابطه برقرار که رابطه داشته باشیم اینا میخوانیم نمیخوام. دلیلش ساده است ترکیه از گل بالاتر به اندیکا ندید. پایگاه هوایی بشتید. به پیمان ناتو پیوستید. همه این کار رو کرده. بل، انگاه اصلا این کار رو کرد. پیمان رو باش. همه اینا پیش وقتا که گروهگار که نگرفت. پیشگاری که نگردید. لیره ترک صد برابر، بلکه 300 صد برابر ارزشش کمتر از ارزش ریال باش. در اون ناهیه اون دور تا دور که نگاه کنید عراق و ترکیه و روسیه و روپلش شو همه اون که نگاه کنید پول ما باز محتم ترین کنید بنابراین امریکا برده میخواد و نوکر میخواد و دوشت به فرمان میخواد حالا اینا یه کارایی میکنن گاهی بخردانه نیست گاهی مورد انتقاد ما واقع میشه ولی فکر نکنید. تا اگر فردا کسی اومد و خواست با اینا به صورت تصادفی بشینه حرف بزنیم اینا زیر بار میرن فایق این نیست به هر حال رفتیم یه جاهایی که نوازین رفت ما حافظ به این درس <تصفيق> خراب. خرابات یعنی جای آدمای خراب قدم من به خرابات جز به شرط ادب این هست یعنی نمیگه در خرابات به شرط ادب قدم بگذار و اگرم یه وقت به شرط قدم منعیزشگی خب اشکالی نداره نه میگه فقط به شرط ادب میتونی قدم به خرابات بگذاری نه جوره اینو میگن هسر و این جز عدات هسره و برای تأکید بگاهی یعنی کلامش خاجه این ترتیب مؤكد میکنه میگه غیر از به شرط ادب پا در خواباد چرا؟ که ساکنان درش مهرمان اینجا مراقبین است که اینا نزدیکترین مردم به خدا هستند. اینجاست نه ساله نه تو نشستن این که چه راه میرن علامت نیست به علاوه این عرض کنن که سه و سه شیش و سه نه و دو یازده هست از این یازده نصفه سه نصفه و از جمعه نصفه قاضی قضی نصفه خلقالی سالفان درشه و هشت نصفه دیگه هست حالا به هر حال اونم هست یعنی اونم معنی داره، اونم درسته من هر جا که به نظرم میاد اون بهتر باشه گفتم سعد مرکدل و گفتم به نظر من اون بهتر میاد ولی اینجا به نظر من اون بهتر نمیاد اگه بود سالکان رهش اون کچی او چیزی بود ولی بعدم هم در پیت دیگه میاد و تحکیفشم معلوم میشه جفا نپیشه درویشی از تو راه روی راه روی یعنی همون سلوک یعنی فیمولدن راه تصبر جفا نه درویشی از تو راه روی بیار باده که این سالکان نمر بره سالکان یعنی ره رو یعنی کسی که راه طریقت راه تصبر میگه میگه که درویش اولین کارش که جفا نباید به کسی بکنه یعنی به صفات الهی به صفات ملکی این میخواد متصف بشه و چطور هم به کسی بد بکنه اگر کسی بد بکنه به کسی این حتما درویش نیست و حتما ره رون این به خلاف اون راهی است کش قدم قدمه. این از که میگه که جفا پیشه درویشی و راه نیست بنابراین باده بیار برای اینکه این سالکانی که من میبینم یعنی کسانی که به راه خانقاه میرن اینا اینا مرد راه نیستن مبین حقیر گدایام عشق دار بزرگترین اختلاف فین شاه و گداست شاه بالاترین مقام رو در جامعه داره و گدا ترین مقام میگه گدایان عشق رو کوچک به حقارت بشون رو نگاه نکنید کوچک ندونه برای که اینا شاهان بی کمرن و بی بیکلاه کلاه و کمر دو نشان پادشاهی دید. کمر اون است که ما حالا بشمیدیم کمر بند و اون که حالا بشمیدیم کمر که الان کمر بنده درد میکنه اونو بهش میگفتن میان میگه کمر شوخ چه بندی به میانن در ترسم آستی رسانت به میان کمرا کمر با این است که کمر به معنی کمر بند امروز کلاهم کلاه کلاه رو دوز آدمای خیلی برجسته جامعه سر نمی سشته. یه چیزی می سرشون که هم شماعتشون بوده هم دستمالشون بوده هم لاحفشون بوده هم زیر اندازشون بوده و در داستان رستان و سهراب فردوسی می که چه به شهر ستمنگان رسید کورزو به شیر بلیکان بسید شیر بلیکان اینه همون فرمون روای سمندان پذیره شدندش بزرگان و شاه کسی به سر برنهادی کلا کسانی که کلا سرشون میذاشتن رفتن به استفال روستن بنابراین میگه اینا پاکچهان بی کلا هن و خصوان بی کمر هن. الان اشخاصی که نفوز محنویی زیاد دارن اینا میگن سلطان بیتاج و تخت یا پادشای بیتاج تخت فلان جا و درویشا که دنبال چیزشون دنبال لقب درویششون شاه میارن صفی علی شاه و رحمت علی شاه و نمیارن بوغ شاه و پشم علی شاه این شاه معنی همون سلطه معنوی و به اصطلاح نفوذ باطنی رو داره من بین که دایان اشراکین قوم شهان و بی کمر و خسروبان و بی کله هند مکن این مکن یعنی از همه این کارهایی که تاکنون میکردی چه چشم به خوش لابد خطابه کسی که کوکبه دلبری شکسته شود چو بندگان بگریزند و چاکران به جهن کوکبه به معنی اون تشریفات و اون همراهان و اون اسکورت و اون دلبر معشوق یه ده هواخواه و هوادار داره یه ده مراقب داره او رو از چشم بعد و از افرادی که صلاحیت ندارن با ما حرف بزنن محافظت بکنن که در دوره حافظ بینام گفتن رقیب رقیب به معنی همچشم و معنی رقیب امروز ندوده رقیب به معنی محافظ و مراقب بوده اون پیرزنی که دنبال دختر خوشکل می کردن و اون نوکر پیری که دنبال پسر زیبا می کردن او گفتن ندوده و هر حال دلبر کسی که بازار حسنی داره بازار یه مش خریدار داره و هرچی حس قوی تر باشه این بازارم هم و گرم تره اون کسانی که دوروبر محشوب بودن اینا رو میگن کوکبه کوکبه یعنی اطرافیان رو عرض کنم که میگه نکن این کارو مرادش اینه این که جفا نکن که کوکبه دلبری شکسته شود اون جمله بعدی اول باید اینجا وقتی که بندگان به گریزند و چاکران به جهان در برند دیگه کوکبه دلبری نمید مکن که کوکبه دلبری شکسته شود تا بندگان بگریزند و چاکران بجهند غلام هممت دردیکشان یک رنگ است. دردیکشان تغییرترین و پایینترین ترین طبقه میگوساران بودن که صاف سر خون رو که نمکنستن بگیرن که هیچ از شراب متوسط وسط خون هم بخورن از این درد دو رو اونا رو می گفتن دردی بی کشم بیگه گلام اونا هستن. که یک رنگ هم. نه مثل اون گروه که لباسشون خاکستری است ولی دلشون سیاه، نه آن گروه که از رک حمله سریه به و این نیست بسیار در دیوان آقاست ماشا. فاکس تست. پشمی داشتم سوپیه و این رنگش خاکستری بوده. دلیلش اینه. یا فاکس گانتس. جواب نداد. گوساندا اونایی که سیاه پشمی شون می‌چن سیاه. می‌ذارم برای فاکس اونای که سفیدن پارچش رو می‌شینن برای پارچه سفید. اونایی که قهوه‌ای هستن پارچش نمی‌شینن برای پارچه قهوه‌ای. یه مقدار پارچمه قاطی هست. سیاه و سفید و قهوه‌ای و اینا که نمی‌شینن تو لیست بود اونا, اونا رو گذاشتم. اینا رو خراب نکرد. اینا رو می‌ذارن قاطی هم رنگش درمیاد فاکس داری. بنابراین ارزان‌ترین ارزان‌ترین پارچه پشمی و احیاناً خشن ترینش و نامرگوبترینش پاکست و هموقت صوفیه میگفتن که اول البته مارای که نمی اول میگفتن که صوفیه باید این خرقه پشمی رو روی تنشون بکشن برای که تنشون آزار بیدنی ریاضت بکشن و این خرقه هرچی کونه و هرچی سنگین سنگینتر و هرچی وصلش بیشتر و هرچی قدیمی تر عرض شیرسیار و حتی گاه یه چیزایی نوشتن تاره بگی به نظر ما ابلهانه میاد میگه که تو خرقه ی حسینب منصور حلاج نمیزم، شیفیش داشت قدیه یه باقالی و این نمیگرفت این رو برای اینکه عذیتشون به نظر ما خیلی مستره میاد بر بر. ولی خب نوشتن این تذکر تو اولیه هر هست این غلام حمت رو حافظ خیلی به کار میبرید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. سعدی هم به کار میذاره این غلام همت آنم اصلا ترکیب سعدی است که حافظ داره سعدی میگه که قلام همت آنم که پای یکی است به جانبی متعلق شد از هزار برست چنان به موی تو آشغتم به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچ در دو آلم نست. دیگر به روی کسم دیده بر نمی باشد خلیل من همه بوتهای آزری بشکرست و او یه قلام حممت آنم که پایبند یکیست به جانبی متعلق شد از هزار برست اینجا باید یاداوری کنم خواهد جحافظ تمام شعرهای قبل از خودشون حتی شعرهای درجه 3-5-4 هم خونده بود و هر ترکیب قشنگی که اینو داشتن گرفته سعدی که جای خود داره سعدی رو دهم اسرای درسته سعدی رو به کار برده اصلا سعدی داره که دنبال تو بودن گناه از جانبه ما نیست با قمزه بگون تا دل مردم نسته تا ای مالی کیه؟ زیوارش دردار نه این کار میکنن یکی یکیه شده خود برها ارز کنم که میگه دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست با قمزه به تا دل مردم نسته تانه مال است حافظ میگه که چون چشم تو دل برد از گوش نشینان دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست و چون خیلی معروب بوده سعدی بیگه نسبت انتحال و خاجه نمیشی که بگیم که اینو سرقت کرده خدای نکرده خیلی اینا رو میگرفته و الان در بیت بعدی میرسیم به حوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن طاعت و نیم جونن هم باد استغنا است که عدتار به کار میذاره در کتاب منطقه تیج قسطه مال کارای کشاوری وقتی که خرمن رو یعنی گندم رو درو میکنن میریزن یه جا همه برای اینکه که بکوبن گواب روی این خرمن و یه چوبی که این چیز رو خورد میکنه این ساقه ها رو و گندم ها رو از خوشه در میره ولی اینا همه خاطی هم بعد این خرمن باد میدن یعنی میریزن رو هوا وقتی که باد کنا نه وقتی که هوا ساکنه نمیشه وقتی هم تو باد شدیده این کار نمیشه وقتی باد خیلی کمی هست این میریزن رو هوا پا سبوتتره میره اونورتر گندم سنگینتره نزدیک میره و به این ترتیب گندم از پا شدن میگه خرمنه تاعت تو اگر باد بینیازی خداوند به وضع نصف جو ازش می‌کاونه همه رو باید به روش باش که هنگام باد استقنا استقنا یعنی بینیازی وقتی که باد بینیازی خداوند رزید هزار خرمن اطاعت به نیم جو ننهند اینقدر مغروره به نماز و دعات نباشه بکن که سرحاله خدا شدید اگر بعد بی نیازی خداوند به وضع هزار بکرمانه تو حتی نصف جوه هم ازش باقی نیست با جناب عشق بلند است جناب یعنی آستانه دست اصلا اینم که میگن جناب آقای فلان جناب آقای فلان, جناب آقای فلان. یعنی ما که قدرمون اون اندازه نیست که با آقا رو در رو صحبت کنیم برای اینکه معمولا آدمای همتراز میتونن با هم حرف بزن وقتی کسی مقامش خیلی بالاتر از آدم باشه اون وقت باید ارایزشو به آستانه در او بکنه. اینی که میگه جناب آقای فلان یعنی من به آستانه در شما چیز میکنم جنابش بلند است حمتی آقست آستانه عشق بلنده جای دیگری همین میگه واسه جناب عشق را درگه بس بی بالاتر از است. کسی آن آستان رو که جان در آستین دارد. جناب عشق بلند است همتی حافظ که عاشقان ره همتان به جان <تص> <تص> زهوار همون زهواره و این دوره ای که مثلا برای این تخته گذاشتن که بمونه اینا رو بشکن در اصطلا ندجه رو زهوار و این کمچنف رو زهوار اصلا زهوار چیزی در رفت معلومش که معلومشکت داره خراب الو، من اطلاعی ندارم البته ولی تا اونجایی که میدونم این است که نفت خام از چاهنی ها و انواع مرگوب و غیر مرگوب به علت ترکیبات و ناخالصی خارجی که دره و, و انواع مرگوب و غیر مرگوب و اینا تفسیم میشه و اصلا نفتایی که گوگرد داره سنگینه چیزای زیاد نیست، اینا قیمتاش پست کرده می که نفت لیبی جز این مرگوش کنی نفت های هنگی اینا را حالا یه فرهنگ بزرگ بینرشده به درمان فرهنگ اصطلاحات صنعت نفت اونجا برای اینو معادل فارسی بود